بسم الله الرحمن الرحيم الإبدال والإعلال إبدال يعني بدأ شدان أواز شدان تغيير حرفي بحرف ديگار حال همين إبدال اگر روح حرف إله باش بش إعلال هم ميگويند فن إعلال روح حروف إله هست الأمثلة دقتي بأمثلة شوات دو قائد رو دارين درس توضيح ميده د قائد يك قائد هيك ابداله شاهد الصائحون الحرمة شاهد فعل معلوم هست حكم القاضي المتهم صمح الحليم المذنب قال سفل شيء الحرم شوهد الحرم المتهم سومحل مذنب شاهده شوهدا حكما حكمه صامحا سومها این مَجْبولش است. این هست هرگاه قبل از الف خودش میگوید تکرار نمیکنیم بریم روی امثله گروه دوم عین ثمرو ای سرت تاجر بالخبر. در امثله گروه دوم اسم فاعلشون آورده عین ا ای سره فعل ماضی هستن. اسم فاعل از همین فلارو رو در رو بروی همین ها آورده است فالثمرو مولعون ای ماضی است مولعون اسم فائله فالتاجرو موسر موسر اسم فائله ای ساره است فعنا موقنون موقلون هم اسم فائله ای قناه هست این هم رو بخاطرین ها ورده که دو قائده رو توضیح ده القواعد بیاید روی قواعد قائده پنجم الابدالو تعریف میکنه جعل حرف مکان آخر قرار دادن حرفی جای حرف دیگر حرف قلب شود عوض شود جای حرفی حرف دیگر بیاوریم ابدال هست و اذا کان الحرف المتغیر حرف علت يسمه اعلالا ایبان و زمانی که این حرف تغییر داده شده حرف ایلی باشد اعلال نامیده می شود هم شدید هم ابدال و هم اعلال زمانی که حرف تغییر داده شده قاعده شماره ششم ا واقع اط اللف و و ضمن تو قلب و این قاعده بسیار مهمی است. زمانی که واقع شود الف بعد از الف بعد از زنمه واقع شود تو قلب و تبدیل به واغ می شود. شاهده میخوایم ازش مجهول درست کنیم خب در مجهول مجبول فالفلن رو زنبه می دهیم. شاهده شین رو که ذمه بدیم علف خونده نمیشه علف که قبلش ذمه باشه خونده نمیشه لذا تبدیل به واب میشه میشه شاهده میشه شوهده هاکمه حکمه که در باب سائله مفاعله و تفاعل این حالت رخ میده شاهده میشه شوهیده قابل میشه قوبله تقابل میشه تو چون قبل از علف چون ذمه هر کجای دیگر فرقی نمی کند زمانی که الف بعد زمه قرار بگره یا به عبارت دیگر ما الف باشد تبدیل به وام می گردد قاعده هفتم اذا وقعت الیا او ساکنتن زمانی که یا ساکن باشه بعد ضمد و بعد زمه بیاد یعنی یا ساکن ما قبلش باشد تقلب و واون تبدیل به واون می شود بانند مونع این مونع در اصل اینعه اینعه همزه اضافی هست حروف اصلیش یا و نون و عین در اسم فائلش مونع خب میم که میم که در اسم فاعل اضافه میشه اما این واو از کجا اومد این وا همون یا هست که تبدیل به واو شده مایه نعموده در اصل که قبل از یا هرگاه قبل از یا ساکن هرگاه ذمه بیاد تبدیل به واو میشه پس شده منع و موسی و لوquen دو قاعده پس در این درس توضیح داد الیف ما قبل مزموم تبدیل به واف می شود و یا ساکن ما, ما قبل مزموم تبدیل به واف می شود.